فصل نهام بیشعور مقدس معاب آدم بیشعور اگر پس از مرگ تناسخ خیابد باز هم بیشعور خواهد ماند رکس هواک یک بیشعور بنیادگراگ تحت درمان اگر برای لاتها و آسمان جل ها آخرین دستاویز میهن پرستی باشه مقدس معابی هم آخرین دستآویز برای بیشعور هاست بعض یا حتی معتقدند که بیشعور مقدسم آب ثار بیشوری خوشمختانه همه آدم های مذهبی بیشعور نیستند و بسیار از آدمهایی که طبق آموزه‌های دینیشون کارهای خوب و مفید زیادی انجام میدن. اما با وجود این نباید از فجایعی ای که بیشهور های مقدسم به اسم دین و مذهب انجام میدن غافل شد همانند هر چیز خوب دیگری دین هم اگر به دست آدم های نابکار بیافته به بیراهه خواهد رفت. این بیشعورها با دو مشخصه از بیشعورهای دیگر متمایز میشن. نخست اینکه اونا میتونن هم از خدا و هم از شیطان برای ترور دشمنانشون مدد بگیرن. یعنی میتونن تقرب به خداوند و تبرا از شیطان رو دستاویزی برای رسیدن به نیات سوء و خواسته های غیر انسانیشون قرار بدن یکی از بیمارانم می واقعاً واقعا آدم به کشیش ماحسودیش میشه هم خدا به کارش میاد هم شیطان. این همه امکانات برای یک آدم خیلی زیاده این عادلانه نیست دوم اینکه بیشورهای مقدس مع آب گمان میکنن وظیفه اخلاقی دارن تا افسردگی خودشون رو به همه منتقل کنن. بیشتر بیشورها دوست ندارن که کسی سر از کارشون در بیاره و به سلک اونا در بیاد. اما بیشورهای مقدس معاب در این زمینه استثناء محسوب میشن. به عکس اونا جد و جهد زیادی میکنن که همه ی رو هم مسلک خود کنن و برای این کار حتی خونه به خونه هم میرن. در بررسی بیشورهای مقدس معاب باید دو دسته را از یکدیگر دیگر متمایز کنیم. یک بیشعور مقدس معاب متعصب، آدم خشک مقدس آتشی مزاجی که به اندازه کافی سکس نداشته و میخواد با تحمیل اعتقادات خود به دیگران اقدگ جنسیش رو جبران کنه. دو، بیشعور مقدس معاب هرفی، آدمی که با ریا و تظاهر و دستمایه قرار دادن دین و مذهب کار و کاسبی راه انداخته و از این راه نون میخوره. هرچند به نظر میرسه که اونجلیست ها جزعه این دسته باشن، در واقع به دسته ی عوربی شعور تعلق دارند. احتیاجی به معرفی اونجلیست ها در اینجا نیست، چرا که دائمان خودشون رو در رسانه های جهانی به اندازی کافی معرفی می کنن. اما دونستن خصوصیات عمومی بیشعور های مقدس معاب برای شناسایی بهترشون در جامعه می تونه مفید فایده باشه. مقرور و متکبرن توازو در نزد اونا تا زمانی که پوزشون به خاک مالیده نشه بیمنیه، اما این مسئله هرگز باعث نمیشه که درباره فواید و لزوم فروتنی موعظه و سخنرانی نکنند. البته اونا در لزوم فروتنی برای خودشون حرف نمیزنن بلکه از فواید و لزوم فروتنی برای شما سخن میگن و قطعا فروتنی شما ایجاب خواهد کرد که در مقابلشون کرنش کنید و به قدرت و جبروت پوشالیشون آسیبی نرسونید راه و روش اونا تنها روش درست زندگیه و اگر نمیتونید این مطلب رو درک کنید بهتره به درک واصل شید در حقیقت بسیاری از این بشورها به این خاطره که به دیگران کمک میکنند. این افراد نه تنها از کتب مقدس برای منکوب کردن دیگران استفاده میکنند، بلکه اصرار هم دارند که فقط و فقط برداشت دگم و تنگ نظرانی اونا درسته و هر کسی با اونا مجادله میکنه کنه شیطان در جلدش فرو رفته. این نوع بیشعورهاگ مقدس معاب، مهارتهاگ شیفتنگیزی در ساختن نقل قولهاگ من درآوردی و انتصاب اونا به کتاب مقدس دارن. اونا روی مسائلی تکیه و به چیزایی استناد می که مؤمنان هرگز دربارش سؤالی نمی و بی ایمانها هم چندان از اونا سردر نمی یارن که بتونن اشکالی بگیرن. مثل تمام بیشور اونام فکر میکنن که با گندگوی و بلوف زدن میتونن همیشه کارشون رو پیش ببرن. بیشور های مقدس معاب معمولا قدرت بیان و نفوذ کلام سهرنگیزی دارن. بعضی وقتا چنان قدرتمند ظاهر میشن که تنها با قدرت بیانشون میتونن سگای هار رو بترسونن و گلهای شمدونی رو خشک کنن. یکی از بیمارانم که قبلا مورد کشیشی به نام بیلی ویلی بود درباره او به ما میگفت او از کلمات مثل بمب و گلوله استفاده میکرد. طوری رفتار میکرد که انگار خداوند برای انجام تمام کارهای مهم از او کسب تکلیف میکنه. اهل رحم و رواداری نیستن. هرچند بیشعورهای مقدس معاب مدیان که رحمت و مهربانی جزء های اصلی کشیشانه رفتارشون چنانه که انگار تسامح تهدیدی جدی برای نسل بشره و باید فقط در شرایط ویژه به سراغ سراغمون رفت در واقع این بیشعورها از اینکه برای یافتن خطاهای سایرین بو بکشند و گناه دیگران رو برملا کنن لذت میبرن اونا عاشق محکوم کردنند خوشبختان این بیشورها هرگز به خدا نزدیک نمیشن وگرنه هیچ بعید نبود که از او هم ایراد بگیرن کشیش جوانی به نام نیزل رابرتسون در رسالهای با نام پول در مقدس نمایی می هر مسیحی راستینی باید در همه جا به دنبال یافتن گناه و مبارزه با شیطان باشه در هر ساگ ساری زیر هر سنگی و در هر قلبی دلیل این توصیه ساده است مومن واقعی اگه همیشه سرش به شیطان گرم باشه، هرگز متوجه نخواهد شد که نیزل داره جیبش و خالی میکنه. عاشق گناهان و اینکه ادعا میکنن که از گناه متنفرن، فقط بازیشونه. اونا از اعتراض به چیزهایی که به نظرشون نقطه ضعف دیگران محسوب میشه، انرژی میگیرن. بیشورهاگ مقدس معاب ملحدان یا در جامعه موهدان که سرشار از بزدلی، بدخواهی، تنفر و بدبینیم برای درک بهتر این نوع اصادیسم به سخنان کشیش جیمی براگرت که در مراسم اختتامیه ی سمینار آموزشی همه گناهکاران، اعم از آمرزیده و نیامرزیده آمرزیده در کلیسای برادران مقدس ایراد کرده توجه کنید میدانم که اگر روزی بگذرد که به مردم نقبولانده باشم که گناهان بسیاری مرتکب شدند و سپس آغوشم را برای شنیدن اعترافهایشان نگشوده باشم، در آن روز هیچ کاری برای خدا انجام ندادم. دوست دارم آنها را در حال گریه و التماس برای عفل گناهانشان ببینم. در حالی که از شدت عذاب روحی به خود می پیچند، ندامت می ریزند و خود را خار و خفیف احساس می کنند. می خواهم تمام چیزهای بد را از آنها بزداغم، و به این ترتیب آنها را از نو متولد کنم. متاسفانه اگه بیشورهای مقدس معاب تمام چیزهای بد را بزدائند هیچ چیزی باقی نمیمونه از این رو تمام آنچه قادر به انجام اونن اینه که این چرخی گناه توبه توبه گناه رو دائم تکرار کنند بیشورهای مقدس معاب در انجام و تولید گناه و ریاکاری مهارت فراوانی دارند اگه خودشون، اونارو اختراع نکرده باشند.